نتیجه تفکراتت چه شد؟ مومن من در طول هفته گذشته گرفتار بودم و نتوانستم وقت زیادی برای مطالعه و تفکر پیرامون بحثمان بگذارم. چطور است درباره چیزهای دیگر صحبت کنیم؟ ناباور برخلاف تو من باز هم به نتایج برهان اعلیت فکر کردم و متوجه نکات بیشتری شدم. مومن دیگر چه نکاتی؟ ناباور با در نظر گرفتن واجب الوجود به عنوان تراه و علت کل پدیده ها نتیجه دیگری که به دست می آید این است که کل شروری که در جهان واقع شده معلول همان واجب الوجود است خدای تو نمی تواند واجب الوجود باشد چرا که در دین اسلام و دیگر ادیان توحیدی سه خصیصه برای خدا برشمرده شده است. خدا عالم مطلق، قادر مطلق و خیر مطلق است. خیر مطلق نمیتواند مرتکب شر شود. مومن سبکم ببینم اینکه که گفتی واجب الوجود، طراح و علت همه پدیده هاست را از کجا بردید؟ منظورم طراح بودن اوست. چرا فکر میکنی او طراح شرور و اعمال بد ما نیز هست؟ اینکه او علت شرور باشد یک چیز است و اینکه طراحح آنها نیز باشد یک چیز دیگر است. اینکه پدیده های شرارت آمیز نیاز به علت دارند درست است. اما اینکه طراحح آنها نیز همان واجب الوجود باشد، این معنی را به ذهن متبادر می کند که او می توانست چیز دیگری طراحی کند اما قصدش شرورانه بوده پس شرارت آفریده است. نابابر میخواهم چند دقیقه مانند تو واجب الوجود را متشخص تصور کنم و سپس پاسخت را بدهم. وقتی گفته میشود خدا عالم مطلق و خیر مطلق و قادر مطلق است معنیش این است که خدا میداند که انتخابهایی به جز خیر هم دارد و میتواند آن انتخابها را انجام دهد. اما چون جز خیر انجام نمیدهد، لذا تنها خیر را انتخاب می کند. در اینجا معنای تراهی کردن در خیر بودن او مستطر است. چیزی که نباید از واجب الوجود سر بزند. اومن، متوجه منظورت نمی شوند. اگر قبول کنیم واجب الوجود، تنها علت به وجود آمدن پدیده است. اما طراحی پدیده ها کار او نیست و هیچ دخالتی در انتخاب پدیدهایی که خلق می کند نداشته، بدین معنی است که او مجبور بوده که پدیده ها را اینگونه خلق کند. او نمی توانست طرح دیگری را اجرا کند. پس خودش مقهور یک نیروی برتر یا قانون برتر از خودش بوده که مجبورش کرده این شرور و این امیاد اراده ها و افعال را خلق کند در این صورت خود او و آنچه اراده کرده است معلول یک طرح بزرگتر است که چاره جز اجرای آن را نداشته به این ترتیب او دیگر قادر مطلق نیست بلکه تنها ماجری یک طرح از پیش معین شده است اگر هیچ چیز نبوده ولی این طرح از پیش معین شده بوده است تا او اجرا کند این دو سوال پیش می آید که آیا این طرح خودش از ازل بوده یا اینکه این طرح این یک پدیده بوده و کسی آن را خلق کرده است اگر این طرح از ازل بوده باشد پس دو هستی از ازل بودند یکی طرح خلقت جهان و دیگری واجب الوجودی ازلی که نمیتوانسته کاری جز اجرای این طرح انجام دهد و یا نمیدانسته که میتواند کاری جز اجرای این طرح هم انجام دهد. چنین واجب الوجودی نه تنها قادر مطلق نیست بلکه عالم مطلق هم نیست و خیر مطلق هم نمیتواند باشد. او چیزی نیست به جز علت پدیده ها طبقه یک طرح ازلی. ازالی همچون خودش اما اگر این تر یک پدیده بوده باشد، لاجرم باید علتی می داشته. به علت به وجود آورنده یک تر, تر راه گفته می شود آیا این ترراه چیزی یا کسی جز آن واجب الوجود است موحدین خدای خود را عالم مطلق می دانند. وقتی آنها به علم خدا اشاره می کنند گویی او را صاحب اندیشه و دانای حالتها و ترهای بیشمار می‌دانند که باید از بین آنها یکی را انتخاب و اجرا کند. وگر نه در برهان علیت ما به هیچ گواهی برای دانا دانستن واجب الوجود به معنای مذکور برخورد نمی کنیم. چرا به اینکه که هم باشد. تنها چیزی که از برهان الیت در آید این است که حد اقل یک عدد واجب الوجود پدیده های جهان را خلق کرده است اینکه آن علم دارد یا نه و اینکه آن قدرت انجام کارهای دیگری دارد یا نه هیچ کدام از این برهان نتیجه نمیشود. راستی یک بار دیگر میگویم که من صلاح نمیبینم که برای اشاره به واجب الوجود از زمیر او استفاده کنید. زمیر او برای اشاره و اشخاص است و ما همراه با اثبات واجب الوجود، همه خسائل و صفات تشخص را که مخصوص پدیده زمانمند و محدودی همچون انسان هاست، از او سلب کردیم. لذا معنی ندارد که از زمیر شخصی برای آن استفاده کنیم. مگر اینکه به واسطه آشنایی غلط با آن، نتوانیم تصور متشخص بودن آن را از سر بیرون کنیم. بگذاریم. اینکه واجب الوجود اول می اندیشد و طراحی میکند و بعد اجرا میکند چیزی نیست که بتوان از برهان علیت نتیجه گرفت بلکه میتوان گفت چنین مراحلی از آنجا که مستلزم تغییر و گونه گون شدن واجب الوجود است نباید توسط آن طی شود حتی اکثر چیزی که میتوانیم بگوییم این است که اگر واجب الوجودی وجود داشته باشد بدون فکر و بدون سبک سنگین کردن خلق می کند و دانش برای آن معنی ندارد چنین واجب الوجودی اگر خیر خلق کند نباید به آن واجب الوجود نام خیر نهاد و اگر شر خلق کند نباید گفت که شایسته صفت شرور است اگر آنگاه که مخلوقی خوب از آن می بینیم عنوان خیر به آن واجب الوجود بدهیم به این معنی است که آن را دارای آگاهی و نیز اختیار در انتخاب بین خیر و شر دانسته ایم. و به نوعی آن را به عنوان تراه پدیده های خیر شداخته به این ترتیب مشاهده هر پدیده شر نیز ما را ملزم می کند که واجب الوجود را مخیر به انتخاب شر و تراح پدیده شر بدانی من همچنان شک دارم حتی بتوان از کلمه دانا برای واجب الوجود استفاده کرد چرا که این کلمه برای حالتی انسانی و حیوانی استفاده می شود دانش مجموع تصورات درست و نادرست ذهنی ماست که ممکن است با واقعیات بیرونی همخانی داشته باشد یا نداشته باشد این تصورات ممکن است محصول اطلاعات رسیده از حواس ما باشد و یا برساختی ذهن خودمان باشد. در هر دو حالت این تصورات محدودیت خاص خود را دارند و فراخانی آنها در ذهن یک فرایند زمانمند است و انتخاب یکی از آنها و تصمیمگیری برای اجرای آن تصور نیز یک فرایند زمانمند است و جز با قطار شدن پدیده‌های پی در پی در ذهن ما و بیرون از ذهن ما حاصل نمی‌شود لذا نمی هیچ شک از این مراحل را برای واجب الوجودی که نه میتواند محدودیت داشته باشد و نه میتواند زمانمند و قابل تغییر باشد پذیرفتنی دانست استفاده از مفهوم دانش و یا تراحی و تفکر و یا اندیشه برای واجب الوجود بیمعنی خواهد بود کاربرد ای که برای حالات ذهنی انسانی و یا حیوانی ساخته شده نمیتواند اطلاعات درستی را درباره واجب الوجود به مخاطب ما منتقل کند بلکه ذهن مخاطب را کاملا از حقیقت منحرف کند. چنانکه نه تو من دیگر مؤمنین نمیتوانید از بكار بردن ضمیر او برای خودتان دست بکشید ولو اینکه پس از درک برهان علیت به این نتیجه نیز برسید که لابد خدایتان همان وجود است و متشخص نیست در فرهنگ اسلامی آنقدر از صفات انسانی برای خدا استفاده شده که شاید حتی یک آن نمیتوانید او را متشخص تصور نکنید مثلا خدای دین اسلام دارای صفت منتقم است که نمی‌تواند یکی از صفات واجب الوجود باشد پرواژه است واجب الوجودی که علت تمام امیال و اراده ها و اعمال ماست معنی ندارد که از کسی یا چیزی غیر از خودش انتقام بگیرد چون کسی یا چیزی جز خود واجب الوجود در ایجاد پدیده ها عاملیت ندارد چه رسد به اینکه شخصیت انتقام جو هم داشته باشد و حدود و کیفیاتش به او اجازه ندهد که بتواند از کنار اعمال بندگانش تفاوت عبور کند مومن به هر حال برای وصف خدا لازم است از کلماتی که برای ما معنی دارند استفاده کنید. در این حال لازم است توجه داشته باشیم که این کلمات به معنای متعارف آن نیستند و فقط جهت تقریب به ذهن کردن یک مفهوم والاتر به کار می‌روند توجه داشته باش در دین اسلام بر روی این که هیچ چیز مانند خدا نیست تاکید فراوان شده است تا مخاطبان به اشتباه نیفتند. ناباور این را پیشتر هم گفتی اینکه در جایی تأکید شود هیچ چیز مانند خدا نیست و در جای دیگر او را سریع الرضا به خوانند از کیست نیست. رضایت یک حالت روانی است و سرعت در رضایتمندی تنها نشان از تغییر در حالات خدا دارد و حتی برزمانمند زمانمند بودن این تغییر هم تاکید می کند و ظاهرا سرعت آن را با سرعت راضی شدن موجودات دیگر مقایسه می کند و او را دارای سرعت نسبی بیشتر دانسته و در بین کسانی قرار می دهد که با سرعت بیشتری راضی می شوند. اینها همگی قابل مقایسه بودن خدا را با موجوداتی نشان می که قرار است به هیچ کدامشان شبیه نباشد. من از مشاهده چنین مواردی یکی از این دو نتیجه را می گیرم. یک. منظور از لعی سکم اصلاحی شای این نبوده که او مطلقای شبیه هیچ موجود دیگری نیست. بلکه منظور این بوده است که هیچ موجودی به پای او می رسن. یعنی او شباحت های نسبی با دیگر موجودات دارد، اما هر صفتی را در حد اعلای خود دارد اگر دیگران بزرگند او بزرگترین است اگر دیگران قوی هستند او قوی ترین است اگر دیگران عالمند او عالم ترین است اگر دیگران باهوشند و تصمیم های زیرکانه ای می میگیرند او زیرکترین است اگر این نتیجهگیری درست باشد لیسک مثل هیچایه به این معنی بوده است که هیچ کس به حد او نمی رسد. نه اینکه او مطلقا صفات موجودات مخلوق خود را ندارد و هستی کاملا دیگر گونه ای دارد دو اگر فرض را بر این بگذارم که منظور از لیس کمثلهی شی این بوده که او اصلا و ابدا صفات پدیدههایی چون انسان را ندارد نتیجه دو دوفام برایم حاصل می شود و آن این است که با توجه به انبوه صفات انسانی که برای او برشمرده شده است این دین در توصیف خدای خود دچار تناقض شده است و آورنده دین شبیه دیگر انسان های هم خودش خدایش را متشخص و انسان گونه فرض می کرده اما میخواسته او را از بعضی صفات پالایش کند قابل روزی به این نتیجه رسیده که خدایش نمیتواند شبیه هیچ پدیده دیگری باشد یعنی شناخت پیامبر اسلام از واجب الوجود به مرور بهبود پیدا کرده و این همه توصیفات زد و نقیص گویای تاریخچه انسانی این تحولات اوست به هر حال چه واجب الوجود طراح پدیدهها باشد چه بدون طراحی و اندیشه خلق کند می توان نتیجه گرفت که پدیده شر نیز تمام و کمال معلول او هستند. فرض انتباق واجب الوجود با خدای ادیان توحیدی که قرار است خیر مطلق باشد، غیر ممکن است. مومن، اگر تو در مورد مسئله جبر ایلی دچار خطا شده باشی، قضاوتت در مورد شرور بودن خدا هم دچار اشتباه می شود. مراقب باش که مسئله جبر و اختیار هنوز حل نشده است و فلاسفه زیادی طرفدار اختیار هستند. به این لحاظ اگر اختیار واقعیت داشته باشد شرور انسانی پیش آمده در جهان به گردن خدا نیست و او همچنان میتواند هم عالم مطلق و هم قادر مطلق و هم خیر مطلق باشد و هیچ خلالی در جمع این سه صفت و دیگر صفات واجب الوجود وجود نداشته باشد ناباور لبخندی زد و پس از مکسی کوتاه و زدن چند ضربه با نوک خودکار بر روی کاغذ به مؤمن نگاه کرد و گفت من فکر میکردم قرار از خودمان و با عقل خودمان به نتیجه برسید اگر قرار باشد منتظر شویم تا اقلای جهان بر سر مسئله جبر و اختیار به یک رأی واحد برسند فکر می چند سال باید صبر کنی؟ آیا می خواهی حواله به هرگز بدهی؟ آیا تا زمانی که همه دنیا به یک نتیجه واحد برسند دینداریت را به حالت تعلیق در میآوری و دست از تدریس درس دینی می یا برعکس ایمانت را حفظ می و تدریس را هم ادامه می آیا واقعا معتل ماندن تا حصول نتیجه همگانی و جهانی بر سر جبر و اختیار را منطقی میدانی یا فقط می‌خواهی که این ترفند را برای حفظ ایمانت بکار بری و جلوی مرا بگیری تا از برهان علیت خودت بر علیه دین و خدای خودت استفاده نکنم؟ مومن راستش این حرف از دهانم پرید و قبلا در صحبت کرده بودیم. زیاد جدی نگیر. منتظر شدن تا اجماع همه متفکرین بر سر یک نتیجه واحد معقول نیست. ناباور. فکر می‌کنم اگر بخواهم صفات خدای دین تو را بر اساس نتایج برهان الیت محک بزنم، چند هفته دیگر هم باید بنشینی و به موارد متناقضی که پیدا می‌شود گوش کنم. حالا وقت آن است که بگویی آیا تو در هر حالت به نتایج برهان علیت پایبند هستی یا نه آیا تو اگر برهان علیت به اثبات وجود یک علت اول منتعی شود آن را محکم و عقلانی میپنداری و همین یک نتیجه را به نفع دینت مصادره میکنی ولی چنانچه نتایج دیگر و بلافصل این برهان نشان دهند علت اول و خدای دینت همصفت نیستند و جزای آخرت غیر ممکن است و واجب الوجود خیر مطلق نیست دیگر به این نتایج واقعی نمیگذاری و رویت را برمیگردانی و میروی تا ایمانت را به چنین دینی حفظ کنی تو با شور و هیجان زیادی از هستی و عدم صحبت کردی و قدم به قدم پیش رفتی تا نهایتا با اطمینان فراوان به وجود علت الالع رسیدی چرا بقیه نتایج این برهان که در همان زمان با اثبات علت العلل فوران می کنند را اینقدر سرسختانه کنار میگذارید؟ مومن، من قصد ندارم سرسختی به دهم اما با همه وجود به درستی و حقانیت معاد و خیر بودن خدا اعتقاد دارم و مطمئن هستم که جوابی برای گفته های تو و هایت وجود دارد که سعی می کنم در جلسات بعد آنها را بیابم و بگویم. هفته بعد به صحبتمان ادامه می دهیم. گرامیان همینجا در صفحه 151 فایل آوایی چهاردهم از کتاب برهان علیت پایان پیدا میکنه تا درودی دیگر بدرود.